کتاب قصه های برگزیده ملل، نویسنده سیما رفیعی، ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای ای صوتی، به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده عظیمه علی گلزاده. داستان معامله خوب در زمان قدیم یه دهقانی بود که یه روز گاوشو به بازار برد و اونو به هفت سکه فروخت وقت برگشت به خونه از کنار برکه آبی عبور می کرد که شنید قرباقاها می میگن هشت هشت هشت دهقان با خودش فکر کرد و گفت نگاهشون کن تا رو خدا این گرباقه های احمق عقل تو کلشون نیست. من گاومو؟ به هفت سکه فروختم، نه به هشت سکه. کنار برکی اصداد و به گرباقه ها گفت، ای احمق چرا بدون فکر حرف میزنی؟ هشت سکه کجا بود؟ من گاومو به هفت سکه فروختم، اما... گرباقه ها باز گفتند هشت هشت هشت دهقان گفت حالا که باور نمی کنی. جلوی چشم خودتون سکه ها رو می شمارن سکه ها رو از جیبش در آورد و شمارد اما گرباقه ها باز گفتند هشت هشت هشت دهقان عصبانی شد و سکه ها رو توی برکه انداخت و گفت حالا که حرف منو باور نمی کنید، بگیرید و خودتون بشمرید. دهقان کنار برکه ایستاد تا گورباقه ها سکه ها رو بشمرند و پسش بدند. اما گورباقه ها باز گفتند هشت هشت هشت و اون هرچه منتظر موند اون سکه ها رو پس ندادند. شب شد و دهقام مجبور شد به خونش بره اما قبل از رفتن قورباغه ها رو به باد فوش و ناسزا گرفت که ای شلب شلوپای زشت مرد شورتون ببره با اون کله های گنده و چشمهای باباقورقوریتون شما فقط بلدین اربده بکشید و گوشو آدمو با اون صدای نکرت پاره کنید اما بلد نیستین 7 رو از هشتا تا تشخیص بدین و سکه های منو بشمورین باز ها با هشت هشت گفتنشون اونو بدرقه کردند بعد از مدتی دهگان یه گاو خرید و اونو کشت چون پیش خودش حساب کرد که با فروش گوشت گاو در بازار میتونه پول خوبی به جیب بزنه وقتی دهقان با بسته های گوشت به شهر رسید، در دروازه شهر به یه گله سگ برخورد کرد که پیشاپیش این سگا یه سگ تازی حرکت میکرد و به سمت بسته های گوشت میپرید و ووو می میکرد. دهقان گفت، بله بله میدونم منظورت چیه؟ تو از این گوشت ها میخوای؟ اشکالی نداره؟ میدم، اما به شرطی که تنها نخوری و، به دوستات هم بدی. زمنم به عربابت بگو که من تا دو سه روز دیگه پولم رو میخوام. منظور دهقان از ارباب به قصاب بود که فکر میکرد و صاحب سک هاست. دهقان بعد از گفتن این حرفا بسته های گوشت رو جلوی سگ ها ریخت و اونها هم شروع کردند به ووو کردن. دهقان راه خونش رو در پیش گرفت در حالی که میگفت هرچی دلتون میخواد پارس کنین اروا به سه روز دیگه باید پول منو به هم بده وقتی سه روز سپری شد دهقان با خودش فکر کرد امشب به پولم میرسم اما کسی برای پول دادن نیومد دهقان این بار با خودش فکر کرد زمونه عوض شده دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد فردا باید برم سروقت این قصاب نمک نشناس. اون روز بعد بلند شد و رفت شهر. پیش قصاب رفت و گفت زود باش، زود باش پول منو بده. قصاب اول فکر کرد که اون شوخی میکنه. دهقان گفت شوخیم کجا بود؟ من پولمو می خوام. قصاب گفت مرد حسابی کدوم پول؟ دهقان گفت فول گوشتای بیزبونی که با اون شکم سکهای واموندت رو سیر کردی؟ مگه صاحب اون سکها تو نیستی؟ قصاب عصبانی شد و با دسته جارو اونو از دکان بیرون انداخت. دهقان گفت نتیجه عمل تو به زودی میبینی. هنوز انصاف و ادالت در دنیا نمرده دهقان از اونجا به قصر پادشاه رفت و اجازه شرفیابی خواست اونو پیش پادشاه بردند. پادشاه که دخترش کنارش نشسته بود از دهغان پرسید چی شده؟ از چی ناراحتی؟ دهقان گفت آلی جناب گرباقه ها و سک ها اموال منو خوردند قصاب هم جواب منو با دست جارو داده و بعد از اون داستان رو به تفصیل برای اونها تعریف کرد. دختر پادشاه از شنیدن این حرفها به خنده افتاد و چنان خندید که اشک از چشماش جاری شده بود. پادشاه گفت متاسفانه من در این مورد نمیتونم کاری بکنم اما حاضرم دخترم را به تو بدم. چون دخترم تا به امروز هرگز از ته دل نخندیده بود و من با خودم عهد کرده بودم که اونو به کسی بدم که بتونه اونو از ته دل بخندونه برو به خاطر این خوش اقوالی خدا رو شکر کن دهقان گفت خدا خیرت بده من دختر تو رو میخوام چه کنم من خودم زن دارم همون یکی برای هفت پشتم کافیه راستش وقتی وارد خونه میشم احساس میکنم که در هر گوشه خونه یه زن ایستاده. پادشاه که از ساددلی دهقان خوشش اومده بود گفت خیلی خوب. جایزه دیگه ای برات در نظر دارم. فعلا برو سه روز دیگه بیا که 500 سکه طلا در انتظارته. وقتی دهقان از در قص بیرون میرفت نگهبان دم در بهش گفت چون تو تونستی دختر پادشاه رو بخندونی مطمئن باش که جایزه خوبی دریافت می‌کنی. دهقان گفت: خودم میدونم 500 سکه طلا در انتظارمه. نگهبان گفت: با این همه پول چی چیکار کنی؟ یه مقدارش هم بده به من. دهقان گفت: چون تویی باشه. دو سکه مال تو. خصیصی که در اون نزدیکی بود و این حرفا را میشنید فوری پیش دهغان اومد و آسین کت اون گرفت و گفت ای مرد خوب خدا تو با این سکه های بزرگ میخوای چیکار کنی؟ بذار من اونا را برات خوردش کنم. دهقان گفت اولاً آسین اما ویل کن که داره پاره میشه. دو فهمن. اشکالی نداره؟ تو پول خورد به من بده سه روز دیگه بیا از پول پولتو بگیر. جهود خوشحال شد و پول های خردش رو به دهقان داد و از سود اندکی که از این راه نصیب شده بود خوشحال شد. بعد از سه روز دهقان به حضور پادشاه رفت. پادشاه گفت: « از سایب 500 سکه تا آماده است. دهقان گفت: « ولی من دیگه صاحب اون سکه ها نیستم. چون دویستاش رو به نگهبان بخشیدم. و سر 300 تاش هم با خسیس معامله کردم. در این هنگام نگهبان و جهود وارد شدن و سکه هاشون رو گرفتن. نگهبان از دریافت سکه ها خوشحال شد اما جهود گفت ببینم سکه که تعریفشو میکردی همینا بود. اینا که وزنی نداره. پادشا از کلاهی که سر خسیس رفته بود خندش گرفت و رو به دهقان کرد و گفت حالا که تو سکه هات رو از دست دادی دلم نمیخواد دست خالی از اینجا بری برو به خزانه و هر مقدار پولی که میخوای بردار. دهخانه از خدا خواسته به خزانه رفت و جیبهای بزرگش رو پر از پول کرد و بعد از اون به مسافرخانه رفت و اونجا مشغول شمردن پول شد. خسیس که مثل سایه اونو تعقیب میکرد شنید که دهقان گرگر میکنه و میگه ای پادشاه ملعون به جای این که پولار دو دستی تقدیمم کنی مقدارش رو هم به من بگی منو سر کار گذاشتی. حالا هی بشمارو هی بشمارو هی بشمار, بشمار. خسیس با خودش فکر کرد عجب روی داره این مرد به جای تشکر از پادشاه، دو گرد و نیمش باقیه حالا میرم پیش پادشاه چغولیش رو میکنم و مطمئنم به خاطر این کار پاداش خوبی میگیرم. پادشاه وقتی حرفای خصیص رو شنید، خونش به جوش اومد و گفت: برو این دهقان نشناس رو فوری پیش من بیار. جهود نزد دهقان اومد و گفت: پادشاه تو رو احضار کرد. دهقان گفت: چرا؟ چه خبر شده؟ خصیص گفت: لابد میخواد باز بهت پاداش بده دهغان گفت حالا که من پولدار شدم درست نیست که با این سرووز آشفته پیش پادشاه برم به خصوص که آستین دین کتم هم پاره شده البته این یکی تقصیر توه خصیص که میدید کلی وقت میبره تا دهخان برای خودش کد تازه تهیه کنه و از طرفی هم میترسید که تو این مدت آتش خشم پادشاه فروکش کنه به دهقان گفت شلوارت که خوبه بگیریم کت منو بپوش وقتو هدر نده دهقان با خوشحالی کت خصیص رو گرفت و پوشید اونها وقتی نزد پادشاه رفتند پادشاه دهقان رو به خاطر حرفای زشتی که پشت سرش زده بود به باد انتقاد گرفت تهقان رو کرد به خسیس و گفت ای از خدا بیخبر چرا دروغ گفتی یه روده راست تو شکمت نیست هیچ بعیدم نیست که همین الانم ادعا کنی که کت تو من پوشیدم خسیس فریاد زد چی گفتی معلومه که اون کت مال منه مگه من اون رو از سر دوستی به تو قرض ندادم تا پیش پادشاه با سر و مرتب بیای دهقان گفت مرد حسابی من چه دوستی با تو خسیص دارم پادشاه وقتی این حرفها رو شنید با خودش فکر کرد حتما این خسیص یکی از ما دو نفر رو فریب داده و برای همین دستور داد باز یه پاداش خوب به دهقان بدن. و بدین ترتیب دهقان با یه کطه تازه و با جیبهای پر از پول راه خونه رو در پیش گرفت در حالی که با خودش می گفت شکر خدا که پولدار شدم اما ای کاش متعهل نبودم و هر گوشه خونه یک زن نمی استاد کانال تلگرامی هزار های داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandoosti t.me/mehrandoosti نشانی وبلاگ ما mehrandoost s t i -ok b l o g f a c o m .blogfa com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی